بعد از اینکه کتاب رو چاپ کردم و منتشر کردم جای شعری رو برای حضرت امام حسن اسکری علیه السلام در کتاب خالی دیدم و با خودم این قرار رو گذاشتم که اگر کتاب رو به صورت صوتی خواستم منتشر کنم شعری که برای امام حسن اسکری علیه السلام سرودم رو هم در یک فایل برای شنوندگان کتاب آینه های زلجلال بخونم. غزل ولادت امام حسن اسکری علیه السلام میلاد دومین حسن آمد، بهار شد. دلها به یمن مقدم او بیقرار شد. شادند آسمان و زمین با ستاره ها از قلب شیعه قصه و غم در فرار شد ابن ی دوم عالم پر از شعف شادی درون بیت نقی ماندگار شد آمد امام اسکری و رهنمای خان. امشب به سوی سامر دل رهسپار شد شد دومین ربیع نیامد بهار نه میلاد دومین حسن آمد بهار شد تقدیم به شما همراهان کتاب آینه های التماس دعا از شما خوبان